آن بحث جنجالی و طولانی که باعث شد همه در آن سویت به چپیم از یادم رفته اما خاطره بصری شفافی در ذهنم مانده که در خلال بحثها و جدلها زیر شلواری هم مثل یک مار لزج دور پاهایم پیچید و دانه های عرق حسابی پشت تنم مسابقه گذاشته بودند قضیه از اینجا شروع شد که دیزی گفت پنج تا حمام کرایه کنیم و دوش آب سرد بگیریم بعد این فکر به صورت اینکه جایی که ویسکی با نعنا بخوریم سر و شکل ملموستری پیدا کرد بعد تک تک ما بارها گفتیم که فکر احمقانه ایست و همه با هم با متصدی هتل حرف زدیم و حسابی گیجش کردیم و فکر کردیم یا شاید هم خیال که خیلی بامزه ایم. اتاق بزرگ و خفه بود و هر چند ساعت چهار شده بود اما پنجره ها رو که باز کردیم فقط حرارت گل و بوته های داغ پارک وارد شد دیزی رفت جلوی آینه پشت به ما ایستاد و موهایش رو مرتب کرد جردن معدبانه و آرام گفت سویت محشریه ما همه خندیدیم. دیزی بدون این که برگردد گفت: اون یکی پنجره باز کن. دیگه ای نیست که. خب پس بهتر زنگ بزنیم یک کلنگ بیارن. تام کلافه گفت: نه بهتر این کار اینه که گرما رو فراموش کنیم. اینطور که نق میزنی گرما ده برابر میشه. تام حوله دور ویسکی رو باز کرد و شیشه را روی میز گذاشت. گتسوی گفت: چرا ولش نمیکنی رفیق؟ این شما بودی که می‌خواستی بیای شهر. لحظه‌ای سکوت شد. دفتر تلفن از میخش در رفت و افتاد روی زمین و جردن زیر لب گفت ببخشید اما این بار کسی نخندید. گفتم من برش می‌دارم. گتسپی گفت برداشتم و شیرازه در رفتش را وارسی کرد و با علاقه و زیر لب گفت امم دفتر تلفن را رو روی صندلی انداخت. تام خیلی تند گفت این که کلام مخصوص خودتونه نه؟ کدوم همین رفیق و رفیق قدیمی و از کجا پیداش کردیم دزی در حالی که از جلوی آینه به سمت ما چرخیده بود گفت: ببین تام، اگه میخوای نیش و های شخصی بزنی، من یه دقیقه هم اینجا نمیمونم زنگ بزن بگو برای ویسکی، نعنا و یخ بیارن. تام که گوشی را برداشت، گرمای انباشته با انفجاری بدل به صوت شد و ما های پرتنین مارش عروسی مندلسون را از طبقه پایین شنیدیم. جردن نالید که: آخه کی تو این گرما عروسی میکنه؟ دیزی یادش افتاد که منم وسط جوآن عروسی کردم تو لویویل وسط جوآن یه نفر قش کرد تام کی بود قش کرد تام کوتاه جواب داد بلکسی یکی به نام بلکسی ملقب بلکس بلکسی جابس سازم بود جدی میگم آلا بلکسی ایالت تنسی جردن اضافه کرد آوردنش خونه ما چون خونه ما خونه بغلی کلیسا بود یارو سه هفتمون تا اینکه پدرم بهش گفت دیگه باید بره. وقتی رفت فرداش پدرم مرد. مکسی کرد و اضافه کرد. البته رفتی هم به هم نداشتن. گفتم من یه بیل بلکسی میشناختم که اهل منفیس بود. پسر رموشه. قبل اینکه اخونمون بره همه یه تاریخ خاندانش رو برام تعریف کرد. یه چوب گلف آلمینیومی هم برام درست کرد که هنوز ازش استفاده میکنم. جهش که شروع شد صدای مارش خوابید و حالا صدای کل و هلهله یک نفسی از پنجره می و به دنبالش صدای فریاد هورا هورا هورا و آخر سر قرش ناگهانی جاز رقص شروع شده بود دیزی گفت داریم پیر میشیم. اگه جوان بودیم الان پا می شدیم جردن به او هشدار داد بلکسیدت نره تا کجا می تام؟ تام در حالی که به زور حواسش رو جمع کرده بود گفت: "بلکسی رو آ از آشناهای دیزی بود." دیزی انکار کرد. "نه، آشنای من نبود. قبل اون نیده بودمش. با یکی از واگن‌های دربست از شیکاگو اومد." خب گفت: تره رو گفت تو لویویل با شده. لحظه آخر ایزابرد آوردش پیش من و پرسید براش یاد داریم یا نه." جردن لبخند زد. "پس لوات می‌کازه مفتی برسه خونش." به من گفت توی ییل نماینده کلاستون بوده من و تا ما تو مبهود به هم نگاه کردیم بلکسی؟ ما نماینده نداشتیم پای گتسپی رنگ کوچک بیقراری را آغاز کرد و تام یکدفعه یک دفعه به اون نگاه کرد و گفت هرستی هر آقای گتسپی شنیدم شما آکسفورد درس خوندین نمیشه اینطوری گفت چطور؟ مگه اونجا نبودی؟ چرا؟ رفته بودم اونجا سکوتی حاکم شد بعد صدای تام بی رحمانه و توهین آمیز بلند شد آ لبد همو موقع اکسوت بودین که پیلکسی میرونی و هیوهن. باز هم سکوت حاکم شد پیش خدمتی در زد و با نعنا و یخ خرد شده وارد شد اما او هم با گفتن متشکرم و بستن نرم در سکوت را نشکست این نکته های ریز پر اهمیت بالاخره داشت روشن می شد گذبی گفت به شما گفتم که رفته بودم آکسفورده منم چنی همون خوام بدونم کی اونجا بودیم؟ سال 1919 فقط پنج ما موندم برای همین که نمیتونم بگم آکسفورد درس خوندم تام نگاهی به دوروبر انداخت تا ببیند ما هم عین او باورمان نشده اما ما داشتیم به گتسبی نگاه میکردیم. یک فرصت تحصیلی بود که بعد از آتیشپس به بعضی از افسررا دادن میتونستیم به هر دانشگاهی تو انگلیس یا فرانسه بریم دوست داشتم بلند شوم و دستی به پشتش بزنم باز همان باور و اطمینانی که به او داشتم جان گرفته بود دیزی که لبخند کمرنگی روی لب داشت بلند شد و رفت سمت میز و دستور داد تام ویسکی رو باز کن که می یه ویسکی نانویی برات بسازم که بخورید دیگه اینقدر احمقانه رفتار نکنی. او نعناها رو ببین تام قرید که یه دفعه صبر کن یه سوال دیگه هم از جناب گتسبی دارم گتسبی گفت بفرمایید. قراره چه آتیشی تو خونه من را بندازی؟ بالاخره پردهها کنار زده شد و گادسپی هم که از خدا خواسته. دیزی نگاه درمانده‌اش را بین آن دو می‌گرداند. گفت: اونی که داره آتیش به پا تویی نه اون. یکم خودتو کنترل کن. تام ناباورانه فریاد کشید: خودم رو کنترل کنم؟ به نظر مود جدید اینه که آدم بکشه کنارو بذاره هر ناکسی از ناکجاآباد بیاد با زنش بریزه روهم اگه اینه که من نیستم بیروزا مردم به ریش زندگی خانوادگی و نهاد خانواده میخندن اینجوری پیش بره فردا فاتحی همه چیز خونده و ازدواج سیاها و سفیدا با هم باب میکنن تام که حسابی داغ کرده بود با این اراجیفی که سر هم میکرد خودش را یکی و تنها در آخرین خاکریز تمدن می جردن زیر لب گفت: اینجا که همه سفیدین میدونم خیلی مردم دار نیستم مهممونایی بزرگ نمیدم اما به نظر توی این دنیای مدرن آدم برای این که بتونه دوست پیدا و خوونه رو بکنه خوکدونی با اینکه من هم مثل بقیه عصبانی بودم هربار تام دهانش را باز میکرد خندم میگرفت خیلی کامل و تر تمیز از آدمی هرزه و ایاش به یک خشک مقدس تمام عیار تبدیل شده بود. گتسوی شروع به حرف زدن کرد منم باید یه چیزی به شما بگم رفیق اما دیزی که فکرش خوانده بود عاجزانه دخالت کرد خواهش میکنم نگین. خواهش میکنم همه با هم بریم خونه چرا نریم خونه؟ من بلند شدم و گفتم فکر خوبیه پاش و هیچ کس مشروب نمیخواد میخوام بدونم جناب گتسبی چی میخواد بگه. گتسبی گفت همسرت دوست نداره هیچ وقت دوست نداشته اون منو دوست داره. تام بی اختیار فریاد کشید شما پاک دیوونه شدین. گتسپی هم برانگیخته از جایش بلند شد و داد زد هیچ وقت دوستت نداشته میشنوی؟ فقط با تو ازدواج کرد چون من بیپور بودم و اونم از اینکه منتظر بمونه خسته شده بود اشتباه وحشتناکی کرده ولی ته دلش هیچ کیو جز من دوست نداشته در این لحظه منو و جردن سعی کردیم برویم اما تام و گتسپی با جدیتی که در آن هم با هم رقابت داشتند اصرار کردند که بمانیم چون آنها چیزی برای پنهان کردن از ما نداشتند و هر کدام حق انحصاری خود می‌دانستند که ما را هم در حیجانشان شرکت دهند. بشین دیزی تام به زور میخواست به صدایش لحنی پدرانه بدهد آه موضوع چیه؟ می خوام همه شو بشنوم گتسفی گفت موضوع همونی که به شما گفتم پنج سالم ادامه داشته و شما خبر نداشتی تام تند و تیز به سمت دزی برگشت آره؟ تو پنج ساله این مرده گفت. نمی نه. ما همدیگر رو نمی دیدیم. اما تمام این مدت همدیگر رو دوست داشتیم رفیق و شما هم خبر نداشتی بعضی وقتا خندم میگرفت اما هیچ اثری از خنده در چشمهایش نبود از این فکر شما نمی دونیم آها اه حسین طور. تا انگشت‌های های کلوفتش را مثل کشیش ها به هم جفت کرد و به صندلیاش داد و غرید. تو دیوانه ای من نمیتونم راجع به چیزی که پنج سال پیش اتفاق افتاده حرف بزنم چون اون موقع دیزی رو نمیشناختم ولی نمیتونم سر در بیارم تو چطور میتونستی حتی از یه مایلی دیزی رد بشی شاید از در پشتی برای چو خاربار میوردی میواردیه و قیه هم که سرهم میکنه دروغه. دیزی وقتی با من عروسی کرد دوستم داشت هنوزم داره. گتسوی در حالی که سرش را تکان میداد گفت: "ها، نه، نه. چرا؟ دوستم داره. مشکل اینجاست که گاهی فکرای احمقانه و سرش می زنه و نمیدونه واسه چی کار کنه." بعد خردمندانه سرش را تکان داد. "منم دوستش دارم. درسته که گاهی شیطنتای کردم و ازش دور شدم ولی همیشه برگشتم و ته دلم دوستش داشتم." دیزی گفت: "حالمو به هم میزنی بعد رو کرد به من و صدایش یک پرده پایینتر آمد و لحن تحقیرآمیزش اتاق را پر کرد. میدونی چرا از راش شیکاگو اومدیم اینجا من در عجبم چطور قصه این یکی عیاشی کوچولوشو برای تعریف نکرده گتسبی رفت و کنار دیزی ایستاد و خیلی صمیمانه گفت دیزی حالا دیگه تموم شده دیگه مهم نیست فقط حقیقتو بهش بگو بعدش همه چی برای همیشه پاک میشه دیزی نگاه منگی به او انداخت و گفت آخه چطور میتونستم دوستش داشته باشم مگه ممکنه تو هیچ وقت دوستش نداشتی دیزی مردد شد. نگاه ملتمسش افتاد به من و جردن. انگار بالاخره فهمیده بود دارد چه کار و انگار توی این همه سال قصد نداشته هیچ کاری بکند. اما کرده بود. دیگر دیر شده بود. دیزی با اکراهی محسوس گفت. هیچ وقت دوستش نداشتم. ناگهان تام گفت. حتی تو کاپیولانی بله. از سالان پایین صدای خفه شده و خفه کننده موسیقی با موجهای داغ هوا بالا می آمد. حتی اون روزی که تو پانچ بول بغلت کردم تا کفشات خیس خیست نشه؟ صدای درگش لطیف شد و گفت. دیزی؟ بس کن. صدای دیزی سرد بود اما دیگر کینهی در آن نبود. بعد به گتسپی نگاه کرد. ببین جی؟ اما همان موقع که خواست سیگار روشن کند، دستش لرزید و یک باره سیگار و کبریت روشن را رو پرت کرد روی قالی و با ناله به گادزبی گفت آه، تو خیلی از من توقع داری من الان دوستت دارم همین بس نیست من که نمیتونم گذشته رو عوض کنم و معیوسانه شروع کرد به گریه کردن یه وقتی دوستش داشتم تو را هم دوست داشتم چشمهای گتسفی باز و بسته شد و تکرار کرد منم دوست داشتی تام وحشیانه گفت تازه اینم دروغه روح دیزی هم خبر نداشت تو زنده یا مرده بالاخره اگه چیزایی بین منو دیزی هست که تو روحتم خبر نداره چیزایی که هیچ کدوم اما نمیتونیم فراموش کنیم کلمات به گادزوی نیش میزدند گادزوی تاکید کرد میخوام با دیزی تنها حرف بزنم الان خیلی هیجان زده است دیزی با لحن رقتانگیز اعتراف کرد تو تنهایی هم نمیتونم بهت بگم هیچ وقت تامو دوست نداشتم تام تصدیق کرد معلومه که اینجوری نبوده دیزی به سمت همسرش برگشت و گفت مگه برات مهمه؟ البته که مهمه. از حالا به بعد میخوام بیشتر بهت برسم. گتبی کمی حرصان گفت انگار نمیفهمی شما دیگه نمیتونی بهش برسی. تام چشمهایش را گرد کرد و خندید. <تصفح> نمیتونه. دیگر میتوانست خودش را کنترل کند. چطور؟ <تصفح> دیزی ترکت میکنه. <تصفح> مسخرفه. دیزی به هر زحمتی بود گفت چرا ترکت میکنم؟ ناگهان کلمات تام بر فرق گتسبی فرود آمد. اون ترکم نمی کنه. اونم به خاطر یک کلاه وردار مبتزل که حت حلقه ازدواجش رو دیزی نالید، دیزینالید، دیگه تحمل ندارم. خواهش میکنم از اینجا بریم بیرون. تام حرف دیزی را قطع کرد. تو کسی ها یکی از اون داره دسته که با مایر وولسفان میپلکه؟ تا اینجاشو فهمیدم. درباره کارات سرگوشی دادم. فردا هم به تحقیقاتم ادامه میدم. جتسوی بدون اینکه خم به ابرو بیاورد گفت هر کاری دلت میخواد بکن رفیق میدونم داستان اون دارخونه هات چیه؟ تام بسیم ما برگشت و تون تون گفت این آقا اب هم چند چندتا دارخونه تو کوچه پس کچه های اینجا و شیکاگو خریده بودن و پشت پیشخون الکل قلات میفروختن این فقط یکی از شیرین کاریاشه همون بار اول که دیدمش گفتم با قاچاق چی مشروب باشه هت زم خیلی هم بود جتسوی گفت. خب که چی؟ برای دوستتون والتر چیز که این کار خیلی هم دونشان نبود شما ولش کردی به اون خدامگ نه گذاشتین یه ما تو نیوجرسی آب خنکی بخوره ای خدایا بعد میشنیدی والتر پشت سر جنابالی چه حرف‌های میزنه وقتی اومد پیش ما ورشکسته بود خیلی هم خوشحال بود که میتونه پولی به جیب بزنه رفیق تام فریاد کشید اینقدر من نگور رفیق رفیق گتسبی چیزی نگفت والتر میتونست سر شرط بندیم گیرتون بندازه اما اون وولس فایم ترسوندش و دهنشو بست باز همان نگاه ناآشنا، اما قابل تشخیص به صورت گتسبی بی برگشت تام خیلی شمرده ادامه داد اون کار کاسبی ها خونه ای فقط یک کار کوچولو بود حالا هم دارید یه کارایی میکنید که والتر حتی میترسه در حرف بزنه نگاهی به دایزی انداختم که با وحشت گاه به گتسبی و گاه به شوهرش نگاه میکرد و به جردن که باز شروع کرده بود به حفظ تعادل شیع نامرئی اما جذابی روی چانهش. بعد به سمت گتسبی برگشتم و از دیدن چهرش یک که خوردم. قیافش، صرف نظر از توهین ها و بحتان هایی که در باغش رواج داشت، طوری بود که آدم فکر میکرد آدم کشته است. برای لحظه‌ای حالت چهرش را فقط اینطور توصیف طور این حالت گذشت و او شروع کرد با شور و هیجان حرف زدن با دیزی همه چیز را تکذیب کرد و از اسم و رسم خودش در برابر اتهامهایی که حتی به او وارد نشده بود دفاع کرد اما با هر کلمه دیزی بیشتر در خودش فرو میرفت تا آنجا که دیگر گادزبی ناامید شد و ادامه نداد و با تمام شدن بعد از ظهر تنها رویای مردهاش بود که به مبارزه ادامه میداد سعی میکرد چیزی لمس ناشدنی را به چنگ بیاورد و اندوه بار اما امیدوار برای رسیدن به صدایی که آن سوی اتاق بود تلاش میکرد. باز صدا خواهش کرد که بروند. خواهش میکنم تام. دیگه طاقت ندارم. چشمهای حراسان دیزی حکایت از این داشت که هر قصد و نیت و هر دل و جرأتی که داشته به انتها رسیده است. تام گفت. دیزی شما دوتا با ماشین آقای گتس ببرید خونه دیزی با نگرانی به تام نگاه کرد اما تام با بی‌اعتنایی و بزرگ بزرگمنشانه روی حرفش ایستاد. "بریم، حزیت نرو کنه." و کنم فهمیده که دوره خوش‌بینش کردن با بالاتر خودش تموم شده. آنها رفتند بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان بیاورند. در یک چشم به هم زدند، مثل هر اتفاق معمولی دیگر، مثل اشبا، بدون احساس تأسف ما. کمی بعد تام بلند شد و ویسکی باز نشده را لایه پیچید پیچید. حضی میخواد؟ جردن؟ نیک؟ جواب ندادم. دوباره پرسید؟ هه نیک؟ بله. میخواد؟ نه. تازه یادم افتاد که امروز تولدمه. سی ساله شده بودم. جاده مهیب محی به جدید مقابلم گسترده شده بود.